فرید حامد ارز سلام و ادب احترام خدمت دوستان عزیز و همراهان در سری داستانهای شیرین شاهنامه فردوسی به دومین قسمت از داستان زندگی زال یکی از شخصیتهای کلیدی و مهم شاهنامه فردوسی رسیدیم در برنامه قبلی به اونجا رسیدیم که بعد از گذراندن یک دوران سخت و بزرگ شدن زال توسط سی در کوه البرز سام از وجود اون با خبر میشه و پشیمان و نادم به سراغ فرزندش میاد و از اون طرف هم سیمرغ زال رو تشویق میکنه که دیگه الان موقع اینه که به میان مردم برگردی و با آدمیان زندگی کنی چون تو سی پرنده یا یک حیوان وحشی نیستی و اونو به سمت پدرش سام هدایت میکنه سام اونو با علاق مندی میپذیره و اظهار ندامتو پشیمانی میکنه امشب ادامه این داستان رو از زمانی که زال به میان مردم و به خانه و در واقع قصر سام سردار سپه میرسه با هم پی میگیریم ما رو همراهی کنید وقتی که سام و زال و همراهانش به شهر می رسند و وارد خونه مجلل و بزرگ و شکوه سام میشن. سام دستور میده که به مدت دو هفته جشن و شادمانی برگزار کنند سام از اینکه پسرش زال به خونه برگشته بسیار خوشحال بود و به قول معروف سر از پا نمیشناخت یا به قول امروزی ها با دومش گردومش کرست و هیچ کجا بدون زال نمیرفت هر جا میخواست بره زال باید کنارش میبود و اون رو تنها نمیگذاشت چیزهای زیادی رو به اون آموزش داد اون رو با خیشاوندانش و با خانواده و اعضای خانوادش آشنا کرد متاسفانه همسر سام که همون مادر زال باشه سالها پیش دار فانی رو ودا گفته بود و به جهان باقی رفته بود در میون این جشن و سرور و خوشیها و محبتهای بیدریغ و بیپایان سام زالگاه و بیگاه دلش برای سیمرغ اون آشیانه برفراز فراز کوه تنگ میشد. چون تمام عمرش رو توی اون محیط گذرونده بود خوشحال بود که به میان مردم برگشته و راه و رسم زندگی رو یاد میگیره اما برای سیمرغ و فرزندان سیموغ احساس دلتنگی تنگی میکرد بعد از چند روز که جشن و سرور و پایکوبی به پایان رسید پیکی از پایتخت ایران با شتاب وارد شد و به سام خبر داد که دشمنان از سوی گورگساران منطقه در شمال ایران به مرزهای ایران حمله کردند و سام که یکی از بزرگترین فرمانده های لشکر ایران بود فرمان داده بودند که سپاه خودش رو به اون سو ببره تا به این لشکرکشی کشی خاتمه بده و دشمنان رو گوشمالی بده سام پهلوان ناچار بود از پسر عزیز و دلبندش مجددا دور بشه و از این بابت ناخشنود و ناراحت بود برای همین چند نفر از دوستان خردمند و همراهان با دانشش رو فراخوند و گفت حالا که من ناچارم برای این مأموریت نظامی به گرگ ساران برم زال رو دست شما میسپرم. درسته که اون جوان برومند و قویه اما باید با هنرها و دانشهای ویژه مردم و طبقه بالای اجتماعی که پدرش یعنی سام داشت آشنا بشه اونها هم به سام اطمینان دادند که نگران نباش ما زال رو اون جوری که شایسته و بایسته است تربیت میکنیم و بهش آموزش میدیم بعد سام به نزد زال رفت و گفته پسر عزیزم من چند ماهی باید از تو دور بشم چرا که دشمن به سرزمین ما حمله کرده و من باید برم و اونها رو عقب بزنم و گوشمالی بدم. تو در اینجا در زابلستان بمون و نزدیکان من و دوستان من همینجا مراقب تو هستند و آموزش های لازم رو بهت میدند. زال هم که دیگه به پدرش عادت کرده بود و با بودن در کنار اون خو گرفته بود احساس دلتنگی و نرادی کرد اما چاره ای نبود جز اینکه، تسلیم این تصمیم پدرش بشه که در واقع فرمان پادشاه ایران بود اون دو همو در آغوش گرفتند و سام با زال خدافزی کرد و با سپاهی آراسته و بزرگ به سمت گرگ ساران حرکت کرد مدت زیادی گذشت و در این مدت زال خوندن و نوشتن، تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، کشتی و خیلی از هنرهایی که مربوط به آدمیان و انسان هاست رو یاد گرفت و در همه اونها تبهری پیدا کرد و از خودش استعداد خارق ای نشون داد بعد از مدتی زال تصمیم گرفت که برای گردش از زابلستان که پایتخت مقر حکومتی سام بود خارج بشه و در اون نواحی گشت و گذاری بکنه پس به نزدیکانش و افرادش گفت که آماده باشید که میخواییم به سفر بریم و تا مرز کابل پیش بریم و ببینیم در این مملکت چه خبره اوزا جوریه و به این ترتیب راه سفر رو در پیش گرفتند و هر شبی در جایی خیمه و خرگاهی برپا میکردند و یک مدتی میموندند و دوباره حرکت می تا رسیدند به نزدیکی کابل فرمانروای کابل مردی بود به نام محراب که متاسفانه نصبش به زحاک می رسید همون زحاک ماردوشی که در قصه های قبلی با هم در موردش صحبت کردیم و داستانش رو شنیدیم اما الان محراب و سرزمین تحت امرش باجگزار منو منوچهر شاه بودند یعنی اینکه به شاه ایران مالیات میدادند باج میدادند و به نوعی بخشی از توابع ایران بزرگ اون روز بودند وقتی که مهراب شنید که پسر سام سردار سپاه ایران در اون نزدیکی اومده و خیمه و خرگاهی زده تصمیم گرفت که برای خوشامدگویی به اردوگاه زال بره وقتی که به اردوگاه زال رسید زال به گرمی از مهراب پهلوان استقبال کرد و اون را به گرمی پذیرفت و پذیرایی کرد زمان درازی با هم به گفتگو نشستند مهراب از حال و روز سام یل پرسید و زال از اینکه او به پیش پازش اومده سپاسگزاری کرد تا اینکه بالاخره بعد از تموم شدن اون مهمانی و مراسم شاه کابل یا همون مهراب کابلی تصمیم بازگشتن به کابل رو گرفت و به زال گفت ای پهلوان دلاور من آرزویی دارم که تو با آسونی میتونی اونو برآورده کنی آرزو دارم که تو روزی رو اختصاص بدی و به مهمونی من بیای و خونه‌ام رو به دیدارت روشن کنی. زال گفت: هرچند که من از اومدن به کاخ تو شاد خواهم شد و از معاشرت و دوستی با تو بسیار خوشنودم، اما خودت میدونی که منوچه شاه و پدرم با این کار هم عقیده نیستند یا هم داستان نیستند و از اینکه من به خونه‌ی شخصی از نواده های زحاک برم به طور قطع ناخوشنود و ناراحت خواهند شد مهرب که این حرف زال رو شنید در ظاهر به اون آفرین گفت اما در دل اون رو شخص بدگوهر و ناپاکدی میدونست است و به نوعی با دلخوری از زال خداحافظی کرد و به سمت کاخ خودش و شهر خودش رفت وقتی که به کاخش رسید با همسرش سیندخت که زنی بسیار دانا و باهوش بود و دختر زیباش رودابه در حالی که در باغ گردش میکرد در باره این موضوع صحبت کرد سیندخت از اون پرسید که ای همسر گرامی بگو که چی دیدی چه خبر بود این پهلوونی که موهای سپید داره و دست پرورده یک مرغ افثانه یه چجور مردیه اصلا شبیه به آدمیزاد خونی و رفتار آدمیزاد داره و آداب معاشرت و آداب پهلوانی رو میدونه یا نه مهراب هم هرچی رو که دیده بود و اونچه که از مهمون نوازی زال دیده بود برای اونها تعریف کرد و در صحبتهاش بسیار از زال تعریف و تمجید کرد هرچند که در دل از زال زال دعوت دعوتون رد کرده دلچرکین بود و ناراحت اما نمیتونست اعتراف نکنه که زال بسیار جوانمرد دلیر، پرزور، سخنور و باهوشه و از همه اینا مهمتر زیبایی و در واقع و بازو و قد و قامت زال رو هم بسیار توصیف کرد و بسیار تعریف کرد و گفت تو این موی سفید هم بر اون قد و قامت اصلا سشت نیست و بسیار هم با ظاهر و با اندام و رفتار و منش اون تناسب داره و زیبایی اون رو دوچندان کرده رودابه که مثل دخترهای این دور و زمانه نبود و به قول معروف آفتاب مهتاب ندیده بود با شنیدن این تعریف و تمجیدها و با صحبتهایی که پدرش کرد گونه‌هاش از شرم گل انداخت و ندیده مهر زال به دلش افتاد و خرد و خواب و آروم و قرار ازش گرفته شد تا اینکه یک جوری بتونه این پهلوان افسانهای رو با اون توضیف که پدرش میکرد ملاقات کنه خب دوستان داستان داره کم کم اشقی میشه داستان عاشقان و رومانتیکی میشه پس اجازه بدید که ماجرا رو در همین جا ختم کنیم و ماجرای عشق آتشین زال و رودابه رو به برنامه دیگه مکل کنیم پس تا برنامه دیگر و داستانی دیگر از داستانهای شاهنامه فردوسی ادامه داستان زال همه شما رو به خدای مهربان می سپارم تندرست و دلشاد باشید